الله الرحمن الرحیم جلسه نهم کلاس فقه مقارن استاد معظم زیایی دوشنبه بیست یکم آزرماه هزار و دیگر مبارثی که مورد بحث و مناقشه است هم در فقه امامیه هم در فقه اهل سنت که تقریبا به نوعی بااش در فقه اقتصادیمون بحث هستش بحث رهن هستش رحمه خبه دیگه رحمه طور بده. ببینید ما یه عقد داریم یه ایقاع ایقاع فقط ایجاب داره دیگه نیاز به قبول البته فقط ایجاب داره و نیاز به قبول هم نداره دو طرف داره مثلا هر دو نفر هستن که یه نسبتی بینشون اقنادی میشه ولی ایجاب داره فقط مثلا طرف دوم هست ولی طرف دوم نیاز به قبول نداره مثل طلاق مثل طلاق طلاق دو نفر داره یه زوج هستن یه دونه زوجه ولی ایجاب از طرف زوجه گفته میشه مثلا زوجه میگه انته تعالی کن دیگه این نیستش که این بگه قبل نیاز به قبل زوجه نیستش میگه اینکه که تلا ماهیت ایقایی دارد یعنی فقط نیاز به ایجاب داره. اما در مواقعش عرض ماهیتش به این تو بکه دو طرف که داره هیچ دو طرف باید یکی ایجاب باشه یکی قبول یعنی نیاز به ایجاب و قبول داره پس عقد نیاز به ایجاب و قبول داره مثل چ؟ کسی نکاح مثلا نکاح عقد دو طرف داره یکی باید ایجاب و یکی هم قبول مثل بی اینجا دو طرف داره دو که یکی باید موجب بش که قامل بش مثل مثلا هب مثل اجاره و مثل رحن و مثل راه که رحن دو طرف داره یکی باید ایجاب که یکی هم قبول بگه حالا بحث رو رحن عقد دو نمونه در رند هست که اینو دیگه اپوزیتیا گفته عقد میگیم عقد گویا و هات اصطلاحا میگن عقد لازم یا عقد چی؟ جایز عقد لازم چه عقدیه اون عقدیه که طرفین بدون دلیل حق به هم زدن این عقد رو ندارن یعنیم که روی آنگی نخواستم مثل نیکا نیکا وقتی از نیکا بین دو نفر منفل شد یکی گفت زبج تو انشف تو مطع تو و یکی هم گفت قبل تو یکی نبید من یکی نه اینجوری نیست هایگر بخواد فسخش کنه این رو دلیل میخواد دلیل میخواد یا طلاقش کرده مثلا ب این همینجوره من آدم این صندله قررد بزن آنیگو ما نمیخوام نه سندرگی دلیل میخواد این اینه میخواد. یا بایش یک این چی میخوام اون خیاراتی که داشتیم مثلا یا این معامله به هم بخوره چرا مثلا خیار قبل اینجا جاری میشه خیار مجلس جاری میشه خیار حیوان جاری میشه نمیتونه به دلیل بگیه اما در مقابل بعضی از عقود هستن عقود جارزن یعنی چی؟ یعنی بدون هیچی دلیل اون قراردادی که به یه دو طرف شده بود امضا کردن و بگیه نمیخوام. مثل چی؟ مثل وکاله است مثل رو به کالج. اول راه رفتنیه یکی عکیل میشه، یکی امو بکل. هرکدوم بدون اینکه دلیل میتونه بگه نمیخواد، یکی میگه میگم نمیخوام، دیگه عکیل داده باشه. موکل هم میگه تو نمیخواد دیگه عکیل بند باش. دلیل عشق هم کشیده، دوست داره. اگه هیچ دلیل نمیخواد یا به خیارهی این وقت نیستش. روز شد بعد او معاهیتش پاید مشخص بشه که این عهد مثلا عبد جارزه یا عبد لازم این هم یه نکته حالا بسیار راجع به رحمه که بسیار مهم و پراهمیته اهمیت رحمه چیه؟ رحمه تطور رو یک گایی با به فارسی خودمون تبایی این گیرار تبایی ها ره گذاشته، این گذاشته یه راهن داریم ما یکونه مرتحن داریم یکونه هم این مرهونه داریم این مرهونه یا وسیله این مرهونه یا وسیله اولا دیگه چیه؟ مثلا من بگیم یه هم مثلا شما یه از من داره سخت مدیوهات میکنم عجدش هم برا رسیده یه ما بردم نه لارم یه موقت دو ماه بده شما دو حالت داری یا حکومت را قبول دو کنیم باش یه به دیگم بسلام هم یا باش بیش یه گروهی بیشونم بذار یه شیعه که من بذار بیگم که باش اصلا بسال از طبعا یه هنگوشتر داره عرضشمندی داره یه فیه میشه شما به این هنگوشتر بیگم ای یا وسیله. دو طرفت داریم یه نفر طلب کاره یه نفر بدیه کار اینه صاد بنظر سند منزلی میبرم وام میذارم سند منزل رو مثلا میذارم وام میذارم حالا اون بعد یه روش بحث کنیم که آیا این هست یا نیستش سند نظرا مثلا را دین است مرتهن طلبکار راهن بدهکار است مرتهن طلبکار است اوه مثلا خونه هر مثلا هر چی انگشت ده بشه عین معکومه بس این مثلا تو فارسی خود رو یه بدهکار یه طلبکار یه جیروی. تو رحم از چند جهت مباحث اساسی توش وجود داره یک یک مسئله تو ره یا ایفا رن امده یا میخواد قطعاً حق چون دو طرف داره دو حرفشن با دخالت دارن در هر یعنی یکی باید ایجاب رو باید یکی قبول رو یعنی من الان مثلا من شما من باید میگم مثلا توی که از من میخواه شما قبول میکنی که در مقابلش وقتی رو شما می قبول قبول تبوری کنم یه بسیر هستم این اینجوری نیستش که مثلا من میدونم من به شما به دکار هم یه قبول یعنی این چیه یا از اون طرف شما سببید آقا میخوا میخوایی من این به رو به تو محلک بدن حتمایی بسیر قرار رسید یا نمیدونم باکن. پس ارزامن از دو طرف مم. یا اینجوری بگم دو طرف دخالت دارن در صحبوت عقده ولی دو طلاق چی؟ دو طرف دخالت داشتم؟ نه فقط شوهره میاد بگو خان دیگه به هر دلیلی تو رو نمیخوام انجه طالبون دلیل نمیخوام دیگه دیگاه رو بخصه نحریت، بخصه نفرقت، همه شیم بسم هم الله نمیخواه، انته طالبان زنگی نمیخواه، و بیانت دیگه از خواستن نخواستن خود اینجا ایار نیست، بخصه ما به عقل چه دو طرف دخالت دارن در صحبوت این قرارت پس رن کدوم نوعیتش؟ یعنی خواهد رحم عقد اولا چیه؟ عقد این نکته نکته نوبا اومدید گفتیم که اوقود یه تقصیم میشد میشه وقتی شد عقد این لازمه یا جایزه یعنی آیا دو طرف باید منتظر باشد بهش و بدون درده نمیتونن فسخش کنن این عقل رو عقل نمیتونن یا نه جایزه یعنی, یعنی چی بگم آیا شبیه بیع یا شبیه وکالت این شبیه بیع یا شبیه بکالته اگه شبیه بکالته یعنی چی؟ یعنی مثال مم. من وقتی قیل رو داشتم میشه شما گفتم با دو ماه هم بهتور بیار من فرد و صحبی هم نخواستم پس این هر رو بنام بده یا آمرون جیرور رو قوضی ندارم آیا میتونم این دارم کنم از اون طرف شما مولیت هم دیو دیو دیو دیو من تا شما به پرداخت دو بگیه این فردا هم میگم آلو دوما دیه این کاسه را نخاسته این انگشتری که دادی دیه من به مال این کالایی که دیه به به من این ماشینی که دیه من به مال فصیده من نخاستم نمی‌تونم گرش دارم مال خودت و طرف من شما 20000 تومان پول ندارم درست من یه موقع دیگه میگم شما یه گرهی چیزی بگه آدی من چیه دیگه رایی دهدن مثلا یا که این میتوان شما میتوانی برمیاره یا برم. جا تنگاه شد برم آه. یا ببرم از بیغتو هایی میتونی هم چی کاری بکنی؟ چون ره آگه اومدن گفتن ره معنیتش هم با بیت داره هم با پکالت تفاوت داره یعنی چی؟ یعنی این دو طرفی که شما اومدی گفتی دو طرف دخالت دارد در عقد دخالت یکیش ماهیت لزوم داره دخالت یکیش ماهیت جواست داره از کدوم طرف لازمه از کدوم طرف جایده رانه لازمه, لازمه. یعنی چیه یعنی تا گرم یا بیمه یه دو به دهی داری به دهی تو روی تو بگیر میدهیم در مقابل گروه اما از بذار مرتهب گفتن یا من جا ندارم که گروه از آن ببر این میشه اف اف چیه؟ جاییست پس از طرف مرتهب شد جاییم یعنی مرتهب میتونه یا نخواستم بسنی بردار ببر گروهی تو بلی راه نمیتونه یا گروه این من رو ببر برگرم این یه علامت سوال اینجا میزارم با شما کار داریم مثلا با این حالات ساله که به زنگوی فرقه میشه اینو چه یک زد لکشه که چه بحثم هست توی این عین درمونه است اما سوال اگر من به شما گفتم که من به رو به شما دو ماه بعد؟ تو به شما میدم. شما در معاملش از من چه گرفتید؟ که شما من هم مثال از میکنم من به شما یه میلیون توم بدهکار بودم. شما وثیقه از من گرفتی مثلاً مثلا به که یه وزیقه مثلا یه انگشتری به یه فرمانید که کالایی کالا میرسند. یک حاله از من وزدی رو گرفتیم. مثلا اون پونش توه بود دو میلیون تومنه. وزیر هستی که دو میلیون تومنه. نکته. این حاله که من شما بزدیگو داشتم دو میلیون تومنه. مثال چی باشه دو میلیون تومن؟ یک دو, دو مثال بینیشن باشیم. مثلا انگوشتر باشیم. یه چاله باشیم. سلامستن. ماشیر باشه. آقای ماشین دارم یک ماشین بگیر دو ماه به من محلت بده انگوشتر من دو ماه محلت من یک سال بونه دارم بخوام بفتوشمش لازمش دارم ولی دو ماه میتونم مثلا چون درده بود مثلا میوان بذارم تو حیات رو کنم بین یک شما مصقل ازم غلول ازار دین من که دو ماه دو ماه شد. شد آیا این مرتن میتونه بده این رو بپوشه؟ یا تو دو ماه پیش به من تعهد ددی؟ یه میدونه من ببینی؟ امروز دو شد، هست بدی درست؟ من با اجازه ادارت و رعایت میکنم این انگشترتو تو یه یا ماشین تو درست شد. یه مدیون تومن ازر طلب دارم. سلام یه مدیون تو طلب دارم مثلا به دارم ما هم این به تو مثلا دو میلیون تومن چون دو مدیون عرضش تشید یه افتران. یه مال تو یه مال دارم. یا نه یه فرض بگرم یه فرضی دیگه تو این دو ماهه آیا مرتقب حق استفاده از این کاله‌ها رو دادی یا نداره بگی خب آقا من دو ما دستم بوده این انگشت‌ها رو دستم می‌گورم با ما خود ارزنی هم باهاش می‌میرم دوتای خطم باهاش انگشتام می‌رم یک سالو داشتم بعداً عفتا به خاطر گوشتم زیاد خریدم پول دارم گوشتمون فریز می‌گورم اونجا ماشین دادی با شب خانم بچه‌ها رو سوال می‌کنی یه دورن می‌زنی آیی اجازه رو داره یا اجازه رو پس دو تا پرس شد. دو تا شد. یک. آیا بعد از غلون ما مردنه میتوانه کالا را به پولش رو برداره؟ یه وقت بس بسیار مهمی شد؟ دو. آیا این تری مدت دو ما حق استفاده داره یا؟ نه. بین امامیه و احل سنت و خود احل سنت و خود, سنت و خود امامیه اختلافه. یکی اون مرتهن مرتهن این معامله به اون به یعنی اون مقدار طلب قیمتش مساوی باشه چی مساوی باشه اصلا تو یه معنی گفتیم بیشتره ای نه نه, نه. بسو بزن اصلا بس این باشه 1 میلیون باشه اصلا هیچ یه نفر رو آسوديرو از, از میکنن میگم اصلا رفت را... منبع یا مرجع این حکم فکری کجاست؟ یه همه آیی دیوی ستا اشتا در قراره پیدا کن آیا شما کنه آیا؟ آیا شما تا خب تا شما خلاصه ای دو دوستان بگم چیه؟ دیوی ستا اشتا دو, دو، یا سر. بسته ما یکی دسته که تو فکر مقارمه امامیه خیلی مهمه بسته رحمه رحم مقدماتی رو گفتن مقدمات این بود که ما یه عرض داریم یه خیلی داریم. ایقا اونی که فقط ایجاب داره از به قبول نگیدن یه طرف است کلن هر مناسبتی چند طرف داره؟ دو طرف داره طلاق چند طرف داره دو, دو طرف بره اما؟ ایجاب رو یکی رسال فندی بده اینکه ایمان بقید چی داره؟ ایجاب دو طرف دارم. اما دو طرفشون دخالت در قرارداد نداره. بقید یک طرف دارم. ام یعنی دو طرف داره. دو طرفشون هم دخالت در قرارداد داره. مثل چی ام؟ که من ایجاب دارم مثل نکاح به اجاره رحم و کاله هست. این نوشت داره. بعد ما این گفتیم این افت که شد ایجاب و قبول دو بود است گاهی لازمه گاهی جایز رو سراغ نیکن لازم مثل بی یعنی طرفهی نمیتونم که این نمیتونم در اینجا نگاه رو ده باشی از گفت مرد دیگه نمیتونم که نمیخواه بگه به هم در نمیتونم نه یا باید فصلش کنه اون امور فصل خوشه یا بعد طلاق بده به هم زدنی. دیگر. دیگر. دیگر. دیگر. ما ماشین داری ماشید رو خریدم. یه کلمی که آقای دامش می‌گه نمی‌خوام، می‌خوام دلیل بگی. یه آقایی که چی بود؟ تو فکر ماه تو فکر ما نه مستحبه. آره. یعنی اولی کردن که قبول بکنه شما مستحبه. درست شد. بعد اینم گفتی. بعد این مسیح راه مهیتش عرض یا چون دو طرف داره دو طرف هم در این قرارداد دخالت داره یعنی ایجابا نخبولشون مستقریت داره برخلاف طلاق که دو طرف داره طرفی که دخالت نداره خوشون بعد عب. کسیم بس عبد لازم یا جانبه با توانگرد که دادن با مثال اینا راهن میشه از طرف راهن لازمه از طرف مردنه یا همون جایسته. البته این علامت سوالی اینجا گذاشتم. یه علامت سوال مورد بحث ما خواهد بود. که تغییر تعبیر درستیه یا غلطه. بعد مثال زدیم. گفتیم گفتین اگر کیسی یک میلیون تومان به دهبی داره. یعنی راهن. میگه چه میگه یا مرتضی به من دو ماه وقت بده. دو ماه وقت. مرتضی میگه به شرطی که یه عین بذاریم یه بسکتی یه بسکتی رایی میزداده یه کالایی میزداده دو تا نقطه پیش میشه یک آیا در زمانی که این کالا دستشه حقی استفاده دارد یا ندارد دو اگر حلول ماه شد ماه فرار رسید این بیتونه ده برکوشه بگه من از توی طلبی داشتم اینو فروختم طلب برداشتم اگه بیشتر فروختم بقیشم یه خودت کمک کردند و بعدان تو بده ده تا بشه. مسابیه هم بود که مساوی شده دیگه. اینه. اینو تو پاسخ رو بعد تیک کردن مهمه بعد از اون وقت استناد هست به یه جواب در به آیه دیوی صاحبش دوسته رو، به رو، و این هم تو مدرس سفره خب؟ ولن تجدو کاتبان لغزی از احل سنت رحم فقط در کجا جایستم توند علا سفر. یعنی میگن رحم فقط در سفره که کاتبی نیستش به و امکاناتی نیست به نویسه و مثلا مثلا یه این نامنگاری هایی برو دست نمیشه تو انگشتر در اصلی داری شداری داری به وقت کارهایی درسته داری کارهای عبدی داری اینو به ما بده بعضی از اهل سنت اینجا فقط در سفر از شمایست میدونن این دوچه اول اما ایمانی توسره داده این بحث را میدون با دمیدهای هم داریم برای رح که مفسر اینه آیه و سیده شخص پیانبره که شخص بیامر در پر بودن به سلاب وقتن بوده از بوده, بوده. در وطن بودن اصلا خدا شما آزوگه این واسه دنیگ بوده بود که در فروشنده یهودی هم بوده اختواز بوده دیگه دو سبت اسلام خیلی یهودیان ها مثلا یهوزه نبوده که باشد ارتباس نباشه می داشت شب بگیم دارن. دارن. مثلا چون بعد که همین استناد ارتباس می به اینکه چرا ما با یهودی ها نمی تونیم ما هر داریم با یهودی با ها که بار صحیونیزم ما ارتباط نداریم که مثلا این آقا استقباری دارن. دیگه که خب پیانبر که اون یهودیه بود پیانبر بستیه گذاشتن تو شهرشون بود وطنشون بود و بستیه هم گذاشتن پس اون علا سفره عنوان قید برای جواز رن نیست پس احرساته دیگه آن رو داره و محدود هم میشه پس به دلیل سیره ایه نوشه. نوشه این یک نوشه بعدی که این ده در این دو ماه حق استفاده دارد یا ندارد دور اهل سنت اینجا بحث داره میگه حق استفاده داره یعنی این شخصی که این وصیغه رو گذاشته این شخص در این دو که این وستی به دستشه به عنوان امانت نیست در حال که ما میگیم نیستش که امانت باشه ولی یه تو گاپسند دادر مثلا نگهش نه چه اجازه اون میشه؟ چه اجازه نده این حق استفاده از این کالا رو دارد برای این مطلبشون هم نه از آیه نه از روایت امامه نجم لذا تو خود اجزتونت هم توی این وقت محل اختلافه بعضی هاشو مثل هنفی ها اصلا حق اجازه؟ باشه حق استفاده؟ نه نه نه وجود داره که حق استفاده؟ نه نه اما نقطه از این حق اینه که اگر سر رسید شد به طرف آقا یه نقطه قبس این که الان بخواه. بخواهی هم رو یا می خوده میخوام می یا رن میخواه یا اجاره این رن چیه در وقت اجاره بشه از رکس آه اجاره آره اجاره بشه چی؟ چرا رن نیست چرا رن نیست چرا رن از دفعه نداره چرا خب استفاده ببینید یای چه هست؟ آه ببینید چیون اولا رحم میذاریم توی؟ رحم اولا اینه آها آه برن... ما پورو میذاریم اگه طرف مثلا بگه آقا من پنجا میلیون به تو میدم این پنجا میلیون تو من اگه به خاطر رحم باشه رحم در مقابل چیه؟ در برمویی برمویی خب خودش داره پول که از رنگ این تقدیم بشه. اینجا میگه چی بعد باشه؟ اینی بعد باشه اینجا. به پول هیچ باقاره. به عنوان فصیقه طلبی نمیشه. چه اگه باشه خودش میشه چی؟ میشه خود عنوان دز تو قدرنده تو وقت. به معنی که معنی اونماریه خود درست میشه دیگه. تا که خونه داره میاد پول نیاز دارم. خونه شما نه. پول خونه قرر میگی به من بده بلی این وقتی بستی شده بود وقتیگه یعنی حق برداشت نداره نه که این اینجا درست نیست میخوام بگم این نمیشه درست, این ده این ده این درست نه, نه. دین در در اگر باشه من میگم به شما از مثلا آقا میگه تا آخر ما تا آخر سات چرا داره؟ من برای ما این پنج به شما اداره بدم شبه از تو بده پانچاد بیوقای اجاره بدی چیه؟ همین 50 اجاره داره ماه اجاره دیتیل کردی تو. تو تا و به معنی که قرارداد بسته میشه اجاره رو بچیار کنه؟ مثلا دو کار انجام بده تو اجاره. یک یک این پوله به مولا چیه؟ غرضه یعنی حق تصرف دو این بدیه ای هم چیکار می‌کنم شما؟ چون اجاره میگم من این کنه رو تو اجاره می کنم به پنجام می دیم فقط شرط اجاره به هم چیه چیجور دو اینا بیشه شروط اجاره یعنی تو ماهیت اجاره مثل ماهیات تقسیدش کنی کنی کن اینا شروطشه یا نه طرف به تو باید بدم پنجام می دیم الانم برد بدم منی الان ندارم بهت بدم توافق بکنی من ما ماهی به بدم خیلی شما بدم حالا یه تساموه هم بهش میگن بردار رحم فرقی نیست بعض میگن مثلا مشروع نیست این مثلا توی هستیم مثلا رن باطله نه این اجاره است به شرط چی؟ قرضه هیچ اچوانی هم نه که بعضی کلمه مثلا این نکشتر دارن حالا. باید هم این زمانی مثلا زمانی که این خود رن و اجاره بگیم وارد زندگی مردم شده اما سست که در وقت شاید واقعا رنگ بوده و طرف مثلا نیزا که بعد به مرور زمان در مقابل زند اگر ما بوشه که میشه این رنه که داره رنگ واقعی باشه شما نداره به طرف من نیم تو تلا دارم نیمچی تو میگم دست سهول از اون موانای همین الان کنیم رنگ میشه یعنی منظرش رو از بیگه میذاره برجم. برجم. نه, استفاده نه. استفاده استفاده را... نه. نه. اجازه استفاده کنیم. اجازه استفاده نه؟ نه نه اجازه استفاده میتونه بده که اینجوری بشه. شما این طرفیش بگو بگو من محتاجم این طرف ها رو بده. آره جوش اولی تو داره قرارداد کن. خونه داره پول محتاج میگه این من من یه خونه دارم پول دارم پول بانک ها بسه قصر اهود بانشان بانشان روی که برای پول به شما میده که عنوان بان تحتیه چی بیده؟ حرب یه حرب بیده که فوقها با هم اختلاف دارد چرا بعد فوقها با اوقات بانوهایی کی ایراد دارد میگن آقا بانوهایی بایشی ایراد بعضی آقا ما اون بانه میگنه با کنی اونها چیه؟ طور نه؟ اونون یه طور می‌کنن، اونون طوری یه اسلامیه. مثل چی مثلاً مزاربه، مرار... مزاعات، مراقب، هر چی دوست داریم. حالا این پس درسته. حالا اینکه در حرف این عمل نمی‌کنن، آقایی، بعضی بله نه. بعض ماده ربات این هست. آقایی بعضی می‌گه از همه‌ی اون‌ها می‌دونیم که کشور اونی نهتله. هست بان بگیری یا بان نگیری این تابعیه در بارد نگاه فعیمان است به شما تابع عنوانی یا عنوانی دوسری جلو منم امضا کردم یا مثلا آیا ها شخص اعتباری حساب بشن یا اعتباری اصاف نشن الان در جامعی دادن چیه مثلا شخص ی شخصه اعتباری بخاطر باشه خب با مشه رئیس نداره به کی از مدیر عامل نده ای حقیقی یا تعبیری که چون باعث نمی شه که اون شخص اعتباری باشه اتفاقا با شخص چه معنا حقیقی چون رئیس داره مدیر عامل زده همه قراردادها رو چی امضا می‌کنه مدیر عامل مدیر عامل چه تعیینی می‌کنه ایات بودیره بعد دوری یه دیگه دارن که خیلی یه تخصیص میشه که از مثلا الان مثلا تو قرار دادم جای انتخابات داره یکی مثلا جلسر همین عمومی و حالا قدر عمومی پنگ بردش قایب شدن پنگ برد نبونن هر جلسر به پنگ برد نیستن نظر به با پنگ بردن پنگ ندادن چه سرزن چه؟ یا بزن نافذ میسه بزن ایادایی که کار خوبا خواست یا دا ماه ها مشکل دارد یا مشکل نه این ریاسته حالا درگیدون تو خودمون دوستان این بعد از دو ماه سررسیدش شد آیا آریا ایزیرونسند آیا مرتهن حق فروش وطنی درا دارد یا بگیم خیر حق فروش وطنی درا دارد یا خیر چای دارد یا خیر دارد یا بیکم بسته ای دارد بسته ای دارد بسته به چی داره که آیا یا آیا دوباره میگم آیا مم به کمی راهن به مرتحن به فروش داده یا خیر؟ آه مثلا اینو تو زمنه هم که داشتن قرار رحم رحمت بستن قلعه شرط نمیستن که بعد صاحب این کالا بودم به شما وکالت نمی نمید تا از طرف من وکیلی وکالت داری که اگر من نیو بردم شما حق چی داری فروش داری؟ پس پزدگی نداره در رن نمیتونم یه اوضاع جدا یا عایردم نمیام با حالا پس آیا مرتضی نه تو خودش برتری دارد یا نه؟ یه تفصیل قانع میگم یا آیا بهش بکلاب داده یا بکلاب نکرده؟ بکلاب میشه جدا یا تر رن نمیشه میتونم بکلاب بدم. پس در رن تا ببینیم چه؟ میبینی؟ این نه میبینم اینجا رنش مشروطه دیگه. علامان. اگر کدی نداره شما چه رن بله بله این راه نشت به داده باشه میگه آ بله اونه او میتونه اونه برس اون سا میتونه برس باشه حالا یه مجده این الان تو همون سال اول بدونه برس بکارن نمیتونه این مرونه آها آ بریدیم میردیم یه باشه میردیم چه سطنبره این دره این چی میشه اصلا یه میگه یه باشه ب آقا این میتونه برشه؟ یعنی وکالت نشوته، بله یا خیر؟ بله، بله. بل. حالا یه سوالی احساس اخلاقی پیش میاد. آ... خب یه دو مقدمات رفتم. وکالت عقد لازمه یا جایز؟ جایزه. عقد جایزه. یعنی چی؟ میشه طعام می به هم بزنه. بعدو مثلا میشه من وکالت دادم، لغوم دیگه درسته؟ گفتم اونی که پیش شما شما بهتروشه شایی من فرمتا صبحیم من لفت دلیل دلیلی نمیخواد فکالت افتش که جالی افتش جالسه پس هم هم شما رو بگیرم مثلا رنگ سر جای خودش کی کی به من دو. دو ما دیگه دو ما دیگه, دو ما دیگه تا خدا بسار که بهت مثلا شما حق فروش بگو داری نرده دیدی گفتیم یی بکالت داشته باشه همه فروش داره وکالت داشت. داشته باشه رو عقد وکالت داشت ولی من آیه نمی‌تونم وکالت بردارم میتونم وقتی بیا بچید وکالت بگیرم یا نه جواب بدید آره یا نه چرا من وقتی وکالت دارم لازم بیاد این عهد لازم یا جائرز از ذن لازم آوا مرتهن چیه بگو؟ مگه به بود وکالت دو طرف است وکالت دو طرف هست اینجا این بحث, بحث بحث بشه. این علامت سوال من اینجاست که شما ما رو آیا لازم داری کنم نمی کنی چون با حالی لازمه آیا جایزه این طرف از طرف مرتحن فقط جایزه برخشید بله جایزه از طرف راهن چیه؟ و وکالت شما با چی بردی؟ وکالت راهن وکالت میده دیگه از دو طرف دیگه؟ و بلی وکالت راهن میده وکالت راهن میده میبوشه بچیده بله این که لازمه منی از چین طرفش؟ جا. نزا الان از شما سآل می کنم من شما چی مقتی؟ جمعه دیگه اگر وکالت در ضمن عقد لازم این عقد چی اسمش عقد رد آقا عقد رد جایز یا لازم آقا مرکبه آفر ترکیبی دیگه این چیکار بودی بس فقط یک لازمه نمی شه چیزی میشه آقا ببین این چطور بده عقد یه ماهیت بحثی هست عقد یه ماهیت بسیته. که اینکه شما میگی اگه طرف لازمه اگه طرف جایز این اصلا یوزر و پاسور صفحه بکنه یه ت람 لازم این عقد یه حکم داشته باشه. عقد به حکم داشته باشه. له دو هوا آها اینو خودش که قدش واسطه نداره نمیگه یه ویکش درشه. باشه؟ حالا یه سوال ازت تو این بهتر میشم؟ این یکی از این دو طرف مجنون بشن یکی از این دو طرف مجنون بشن این عقد چه میشه او یکی از طرف بمیرم آه این وقت ما نمی که جایزه این آقای مردن مرد آیا نفوز عرض از بین گره تو فکاره دیگه بین میره از بشه؟ تو نبره توی چی؟ نه نه بزنگیر. از بین نمیره اگه تیمونه شدیه وقت آقا شد؟ شما که بگیه عرضش اگه وکالت بود چی میشد؟ شد؟ آز بین میره از یه جایز بود دیگه از بین دارد. یبو، آخه اینجا چی؟ اجازه بدید دو تا رو از بین یه خیلی بد میشه دیگه این طرف. پس خواهم درستش می‌گم. یعنی ما باید ماهیت رهن رو بگیم چیه؟ ماهیت رهن دیگه ابسطی تن است، یه عقده لاغریه. عقل در عوض چیه؟ دلیل برای نوبوسی بودمش همین دلیلی مثال سار اگه به موت احاده ما باشه چیه نه اگه اینجاز رو بمیره نه اگه جمعون بشه کلوم عقل این حالت رو دارد آفرین لازم پس معاییت رن لازمه ولی به دلیل این مرتن در حکم چیه؟ جوازه. و الا اصل اولی است چیه؟ لزمه. لزوم لزم اصل اولی شد لازم، اون موقع دیگه ما در ضمن عقد لازم فصخش جایز نیست. پس آقای وکیل، آقای به فرمونی که راهه حق از وکیل را در بحث رحن ندارد اگه گفتن چرا به بالاکه لازمه باید این رو پاسو اینجا که عضل در عمل و رحم بشه لزوم لزومشم از کجورت میشه درمونیم تو اینجا آه آه به بود عهده ما و به جنون عهده ما از بین نیمیره اینجا پس حفت حسنا این واژه‌ی گوش ملتا ده گفتم در فروش شما واقعا می‌تونی می سر حلول ما اینو شه کنی این بحثی نذار اما اگر به شما وکالت ندادم اگر به شما وکالت فروش ندادم سر دو واش شما می‌تونی بفروشی آره آره از دکتر قرار است خوش ندانند سر دووام شد در گرداب بدن داری نه همین استاد چی کار می‌کنه آره می‌گیره اینجوری با چون به کولر نمیگیره دست از شما پس وکیل قابل عزل نیستش. ایجا وکالت ندادم. درست شد؟ پس یک وثیقه گذاشتم. دو وکالت در فروشم ندادم. حالا سر ماه شد. آقا سر اومد آیا حق فروش دارد یا ندارد؟ آقا یه فتوای فوق‌العاده مهمی باعث در مقابل همه باستازی فرس آی فحصا. آقای خوی ایشون نموده بله حق فروش را دارد حق فروش را بگو دارد امون مشکول نوشتم بسه اینجا علامه معقل کرکی سید آمدی عامل. فیض کاشانی صاحب جواهب بلا استثناء گفتن حق فروش رو نداره آقای تنه بله در منحاج صالحین جلد دو صفحه سد میگه بله مرتنه حق فروش رو دارد یعنی سر دو ماه شما نهیم. من نهیم در قیدیم بدم آقا سر دو ماه میده رو طلبشو بذاره به جیمش باقی همه به میگرده اما مشکور چی میگرم؟ عشق یا نخیل اینجا باید مراجع حاکمه به مراجع قضایی حالا مسئله دو دو دو تو مراجع قضایی چه میکنه؟ آقاییش دوست دروشی میگه نخیل اونم حق اجازه تو نداره چیکار کار داره تو باید؟ بیگه میشه بحث چی؟ یا آقا من باید اینه گذاشتم از اینه این فروش باید امت و حبس بماند تا خودش ارتدام به فروش بکنه لذا بحث چی مستره میشه میگید آقا حفظ لذا میگن در بحث رن اگر در واقع حفظ میشه تا زمانی چه میگو؟ رضایت بده پسر اول به پسر خوده بابتش حبس میشه خودش تو بگی باش من ببینیم مثلا مثال براتون من انگوشترم بودم خیلی انگوشترم برات ارزش منده تو چرا ازش می‌نده؟ اصلا اول رو مقدمی نه این مقدمه را کجا می‌دی شما. بسیاری املاس است. بسیاری املاس است. بسیاری است. بسیاری شما که که آیا شما که آیا شما که آیا شما که آیا شما شما در دادم که پول رو پول میگیرم ندارم من این عوا این عوار بگیرین خیلی میزنه این عوای من مثلا همون ارزش دیگه بیشتر مثلا ارزش داره من باها در بده کنم این عوارو میاد ببینش مثلا باج جا ولی این عوا هستند علو به قرانج بیه یه دیگه داره مثلا این یادگار تلر شما همین حساب یادگار پدر یعنی گردنم رو دیگه نمی‌ذارم بهوشی خودت حساب کنی برای ادمی ندارم پولش نگا اگر پول داشتم به شما میدادم دیگه داده بودم ندارم پول بدم به شما اگه پول داشته باشی اون دیگه هیچ چیزه بحث دیگه اون دیگه اثار دیگه تمام داره پولش خوب نه این لفظ نمیتونم مطرح من رو میخوام بلانق تو حفز میکنی فاضی تا زمانی که تو چیکار کنی رضایت بدی به فروشی یا این آها از طریق دادگاه بلاوار مثلا بدهی داره بدهی هست که نداره بده درست شد برو تو قواعد احسار مثلا اله کنوش چیز یه موسره یه موسره اصلا پیشنی های دیگه من فقط این طرف تو رو حال آها اله ممتنع، چیه؟ من دارم پورمسیه مثلا من وقتی ماهیت وسطیقه اون میشه ببین شما که الهاجان برده موندمه اینی که من پوریه دارم وسط هم وسطیقه داریم اینجا نه من دارم نه برای اون داره که وسطیقه نیستش که شبان یکیان من از یایی پور دارم من پول دارم من یه ماه من نمیدم حاجر بیاد وسط میگه آقا تو یه میز یه ماشینداری، ماشین داری یه پارچ یه دوربین داری یه هیچی یادت این نداره بده نمیدونه با نداره دو تا مسئله اساسا بحثمون نمدید ارزش این بحثه چیکاره است این نه ارزش ندارم نمیشه مگه میشه یه حسی یعنی این نیستش که اصطاد <متصفح> اینو هر با با از آزاد, از آزاد بزاری اگر هر آزاد دیگه از هم از آن هفت نظام حقوقی ها چی بگید یعنی هفت هفت هفت این غلطه هفت سخمینی این محران با تبدیل پول بشه بشه یعنی گرواته الزام میشه با هفت طرف الزام میشه به پرداخت پولش یا داره چه بده ندارو ای کالا رو چیکار کنه بفروشه نمیفروشی پس عادی این ظلم به اون بنده خدا مارترین تو هم بله حالا امای خوی میگه چی میگه اصلا مراجعه دادگاه هم نیست. حبس هم نیست حفصا اصلا معنا نداره برو بفروشش شما خیلی بحثانه که آقای مثلا خواهی مدناش چیه دویده یه مدناش بیشتر باستش پیدا نشده بحث مقاست دوستان بحث مقاست تواست یعنی بگه آقایی کسی یه پولی رو گرفت شما طرف نداد نداد چیکار کار باید کرد؟ چیکار باید که طرف نداد مثلا هفته رو بده چی قرار واسه کو اونجا تراست آها بگه باشه کنه. با کنه. این کار کنه طرف انکار بکنه نخواد دور همین اشغالات نداره اصلا مقاسمین چیه میگه طرف از طریق مراجع نتونه بگیره عطف واقعه مثلا شما هم بعد شما طول خاصی ندارید داستان ما شما شاهده مثلا ازش شاهدی گرفتیم نه بس دیگهی گرفتی این چی نگاه من از صد هزار تا گرفتم که میده من هفته دیگه دوشنبه یه به دوشنبه دیگه بزار بزار پولی؟ چه, بولی؟ چه پولی؟ ای بروب چه هر پاچی؟ همه همه شما رو میده چه قاضی؟ قاضی میده که تفتیان دادی علوه بینگه نه تو اله بودگهی بینگه نه بیاده شما شاهد دری نه دخت نوشته هم نداریم؟ نمجه آقا نوید؟ دوزی داریم؟ هیچی نداریم؟ واسه میگه کنه رکنگاه را در اینشان چی کار نداریم؟ من تغاثیم واسه ست توان یه بعد به یه تعلیم آقای خوی همین تعلیم یعنی اینکه چیه؟ از آقا آقا تغاثیم؟ این کشوراتن برایش محتوایه. پس دوستان، تو سه تUFF به خیال عقلسوند نه یکی تو بحث اجازه در استفاده است که اونا قائل به است... اجازه استفاده هستن. دو بحثی از عقلسوند نه علاوه سفارنداره. میگن از هم راه تبل نسب القرآن. در زمانی که علاوه سفارند، ولی من که چندو بگو، آت و با آنکه بگویم مسکوت بیا. بگو بس یه دو تا پیش برداریش صفر دو, دو بودی بودی. عدم کاتبه بعضی اونان این پشمول رو به زور مبنای فیش بگیده به چه یو هم سیه پیامبر پیامبر اون جریان رو تیبه بجور دادن رم دادن در وقتن یکی نکته بردی این بحث حبثی که بحث کردی که تو امامیه این اختلاف وجود داشتش که آیا در زمان وجود داشتش که به چه شکل هستش خب حق از وکیلم ارز کردم یه, یه دوستانم نهیمده امروز یه پیام میبینده چند کچه یه سوال یه چیزی من سر کلاس گفته میشوند دوره از سوال رو از من مطرح کرد که بحث ادالت میدید یه ارکه امام جماعت ادالتش به چه شکله من جبوش رو دادم دو... ببینید ادالت در واقع ما یه شرط علمی داریم یه شرط واقعی شرط علمی شرط واقعی همه دیدید که من بگم اونی برست همون چید چید که میخواستن بگم و گفتن عدالت ممکن بحث کنیم ببین اول شروط دو قسمه بعضی از شروط عدالت میگیم شرطه شرطه سرطان یعنی علمیه شایع اوقاتش تو برخی جا عدالت شرط واقعیه یه واقعا مثلا تو بحث طلاق که من مطرح کردم وجود شاهد و این زن ادالت شاهد یه شرط چیه میده؟ یعنی چی واقعیه؟ یعنی اگر الان مثلا من شما شاهد شدیم برای طلاق یه نفر طلاق واقع شد انت طالبان هم گفتیم وکی بهشم شدیم مثلا شاهدش هم دو, دو دو بعد فهمید که من عادل نیستم کامیان طلاق شرطش کی بوده؟ عدالت مواقعی بوده لذا اون پشل طلاق نافذ نیست ولی توی این موجه شرط چیه؟ ارمی ارمی اینجوری به نیستان کلی روزی تر باشه یعنی دوست ما هم نایینده دوست دین عمل عدالت چی رو من دین عمل خیل داشته باشم که آقا چیه؟ نظرم الان افتدا کردم، امرختم مسجد، آوا رو بشت الله و اکبر بهش افتدا کرد سه که ای، این هم روز دیانش کردم. ساعت بعدش مثلا کبیره رو مرتکب شده بوده هم شده اصلا دارم یه همه به سر دارست بس جهنم، بگویم سر. من چیه افتدا کردن؟ طلب ها چی دیستند؟ در واحد این ماجره ها طلب شو به می بعد به هزم در هم که اردوزی این بود خیلی بحث ما که که ایناموش ایناس پیدا کرده یا پیدا آره روز ولادتی گیام یه اعدام بعدی رو متوقع آره روز ولادتی تا آره یکی محاربه است که فعل در نظر تو محاربه و افشاد فعل با محاربه تو محاربه کشته آره برای اینکه وقت به افشاد فعل محاربه که چهار تا عنوان چیز مجازات داره که شما یکی رو چیز چیش این بودن افساد واقعا از اگر بود افساد ملعه داشت، محاربه داشت، چون شما که داشتید رو ادام کنید اما هین عمل چی بوده این؟ قادر بوده از نباه محاربه از ادا شرط ادامه ادامه تو بردیش حالا فقط دستم کجا شرط ای کجا شرطه؟ کجا شرطه؟ علمی دین اقل هستش ولی که بعد کشف خلاف باشه نماز نه و نه غذاان نیش خیلی نیست این دقیق بکنیم بله کسی که به این اصلا به جاورد همون دینه رو بکنیم کردن ادادن نبود فرمز شد اون نمازش دیگه اون که عمل بوده دیگه. این انجام عمل... رو ولی غیر رو این جماعت نماز اون ناظر به نماز فراداست و اون امور مشترکی بین فرادا و جماعت این که نماز جماعت احکام خاصه خودش داره لاتهات تو اینجا اصلا قابل جریان